علی گلزاده داستان اجوزه رد و برق در میون جادوگرایی که در خدمت پیرا ملکه زمستون بودند یکی هم اجوزه رعد و برق بود وقتی که ا شاه مستون سلطنت می کرد. این عجوزه تونست از میون اقیانوس عبور کنه و به جزیره دور افتاده و متروک خودش فرار کنه و اونجا مشغوله تره نقشه هایی بشه تا بیماری ها رو برای حیوانات و آدمایی که در اون سرزمین زندگی می کردند به بیاره او از دست آدم ناراحت بود چون در پیروزی آنگز شادمانی کرده بودند در نیمه تابستون وقتی روی زمین مثل حمام گرم شده بود و نور خورشید درخشان و سوزان بود و دریا به خوابی آروم فرو رفته بود، اجوزه با عرابه جنگی سیاهی که توسط سکهای سرخ درنده کشیده میشد در حالی که اطرافش را هم ابرهای تیره و انبوهی گرفته بودند، خودش رو بالای سرزمین اسکاتلند رسوند. همونطور که عرابه میرفت رفت صدای طلق تلق چرخ ها و پارس سک ها چنان صدای وحشتناکی ایجاد می کرد که باعث وحشت مردم میشد. او از دریایی به دریای دیگه میرفت و بالای تپه ها و چمنزار ها و مراته که می رسید گلوله های آتیش رو از داخل عرابه به بیرون پرتاب می کرد. آتیش رختار رو میسزون و ترس و وحشت رو روی زمین ایجاد میکرد و همچنان عرابه جنگی در میان ابر و دود حرکت می کرد. روز بعد باز اجوزه با عرابه گلوله های آتشین خودش بازگشت و گله هاش درختای سررب و کاج رو در ساحل نقری با آتیش کشیدند. خارابوته ها و چراگاه ها و گیاهان شهر از گرمای آتیش پشمردهند. شاه دچار دردسر بزرگی شده بود. پس جنگجویان خودش رو فرا خوند تا دستور بده اجوزه رو نابود کنند. اما آنها از ترس شعله های آتیش فرار می کردند. روز سوم باز اجوزه برگشت. شاه کنال کارلیب قهرمان بیبا خودش را صدا زد و گفت سرزمین سلطنتی در حال نابودیه باید این عجوزه لعنتی کشته بشه تو نجیبزاده شجایی هستی و من به کمکت نیاز دارم کونال گفت ای شاه من با عجوزه بدکردار مبارزه می اگه امروز موفق به کشتن اونشم فردا اونو از پای در میارم کونال وقتی حرکت عرابی جنگی رو دید صدای وحشتناک اون را شنید و خودش رو به بالاترین نقطه کوهستون رسوند و منتظر حمله اجوزه موند. اجوزه خودش رو در میون عبری که راوش را پوشونده بود، پنهون شده بود و کونال نتونست اقدامی بکنه. پس نزد شاه برگشت و گفت: متأسفم، نتونستم اجوزه رو در میونه انبوه عبرهای سیاه ببینم. شاه گفت او دوباره باز میگرده باید با دقت عمل کنی. کنال آماده شد تا مقدمات مبارزه با عجوزه رو فراهم کنه او به مزرعی رفت که نزدیک قلعه سلطنتی بود بعد تمام بره ها رو از گوسفندای مادر و تمام گوساله ها رو از گاب های ماده و تمام کر ها رو از مادیانها جدا کرد و در محل جداگانی جای داد صبح که شد سر و صدا و نگرانی عجیبی بین حیوانات به وجود اومد هرگز کسی چنین صدای بعبه از گوسفندا و چنان صدای ماغ کشیدنی از گله گاوهای ماده یا چنین شیه کشیدنی از مادیانها رو نشنیده بود این سر و صداها خیلی رقت بود. شنیدن ناله برره ها،, ها، و کره که مادرای خودشون رو جستجو میکردند و اونها رو صدا میزدند. مردم از این اقدام کنال با بودند و دلشون میخواست بدونند که او چه هدفی از این کار داره. اما کسی چیزی به اونها نمی گفت. قلب زنا از صدای ناله حیوانات جوون به درد اومده بود و اشکشون جاری شده بود. صبحی واقعا پر از غم و اندوه بود. مقدی عبرهایی که عرابی جنگی عجوزه جادوگر رو در خودش پنهون کرده بود نزدیک قلعه رسیدند. گلوله های آتشین به سمت جنگل پرتاب شدند و مردم از ترس پا به فرار گذاشتند و خود رو در قارها و هفروهای روی زمین مخفی کردند تنها چند جنگجوی منتظر و ترسان با چشمهایی از حدقه بیرون زده و رنگ پریده روی زمین ایستاده بودند کونال تنها روی تپه سبز نیزه خود را محکم در دست می میفشورد وقتی ابر روی دره را رو پوشوند که قلعه در آن واقع شده بود عجوزه صدای گریه و ناله حیوانات رو شنید و چون خیلی کنشکاو بود و میخواست بدونه چه خبر شده و این همه سر و صدا برای چیه سر خودش رو از عبرهای سیاه بیرون آورد و با دقت پایین رو نگاه کرد با دیدن صورت وحشتناک و سر خاکستری عجوزه ترس در دل جنگ جویه افتاد اما کنال مرد بی باک و نترسی بود او منتظر موند بدن عجوزه کاملا پیدا بشه و به محض دیدن او دست راست خودشو تا شون بالا برد و نیزه رو با چنان سرعت و قدرت به سمت عبرها پرتاب کرد که هیچ چلچلهی ای نمیتونست با سرعتی که نیزه کونال حرکت میکرد در هوا پرواز کنه اجوزه زخمی شد و با پنجه های بزرگ و وحشتناک خود به بدنه داخلی عرابه چنگ زد و سکهای سیاه خود رو هشدار داد تا سریعتر حرکت کنند. اونها با سرعت به سمت شرق راه افتادند اما هرچه می رفتند صدای وحشتناک تلق تلق عرابه زیفتر و ضعیفتر می شد تا اینکه صدا به کلی قهد شد. ابرهایی که اجوزه با سرعت از میون اونها عبور می کرد، پاره پاره شدند و بارونی سیل آسا شروع به باریدن کرد و آتیشی که جنگلها رو شعله بر کرده بود و چمنزارها رو می سوزند خاموش کرد شادی در دل مردم موج می زد شا و کنال بیش از همه خوشحال بودند شاه انگشتری گرامبه ها و دست بندی از طلا و گردم بندی گران قیمت به کنال هدیه داد. حالا روی زمین صلح و شادی برقرار شده بود و عجوزه که به شدت از کنال قهرمان قهرمان قهرمانان ترسیده بود دیگه هرگز به اون سرزمین برنگشت. کانال تلگرامی هزار افسان داستان‌های افسانه‌ای ای صوتی نشانی کانال تلگرامی تی نقطه می سلش مهران دوستی تی ام نشانی وبلاگ ما m e -H -R -A n d o s -T -I -O -T -B -L -O -G f a مهران